من ترک عشق شاه و ساغر نمی کنم ست بار توبه کردم و دیگر نمی کنم باغ بهشت و سایه توبا و غصر و هور با خاک کوی دوست براور نمی کنم تلقین و درس اهل نظر یک اشارت هست گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم هرگز نمیشم به سر خود خبر مرا تا در میان میکده سر بر نمی کنم. ناصح به تن گفت که رو ترک اشک کن محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کلشوه بر سر منبر نمی کنم حافظ جناب پیرمغان جای دولت هست من ترچ خاکبوسی این در نمی کنم